سلیم در روابط شخصی کسانی که می‌خواهند به نحوی از من استفاده کنند یا آلت دست قرار دهند یا کنترلم کنند چه باید بکنم آیا باید تسلیمشان باشم این گونه آدم ها از هستی بریدند بنابر ناآگاهانه تلاش می کنند تا از تو انرژی و قدرت بگیرند فقط یک آدم ناآگاه هست که میکوشد از دیگری استفاده کند و یا دیگری را به بازی بگیرد اما این نیز حقیقت دارد که یک آدم ناآگاه است که مورد استفاده دیگری قرار میگیرد و یا به بازی گرفته می شود اگر در برابر رفتار ناآگاهانه دیگران بیستی و یا با آن بجنگی تو نیز به ورطه ناآگاهی می افتی. اما تسلیم به معنای آن نیست که تو اجازه بدهی دیگران از تو استفاده کنند و یا تو را به بازی بگیرند ابداً چنین نیست کاملا امکان دارد که قاطعانه و استوار به کسی نه بگویی و یا خود را از وضعیتی که دوستش نمیداری بیرون بکشی و در عین حال در حالت عدم مقاومت باشی وقتی به کسی و یا وضعیتی نه این نه تو نباید زاده واکنش باشد بلکه باید زاده بسیرت تو باشد بصیرتی که به تو می در آن لحظه چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است؟ بگذار نی تو، نهی آزاد و رها از همه ذهنیت ها و احساسات منفی باشد تا موجب درد و رنج بیشتر نشود. من در محیط کار خود احساس ناخوشایندی ندارم. از محیط کارم خوشم نمی آید. کوشیدم تسلیم باشم اما موفق نشدم. مقاومت زیادی را در درون خود احساس می کنم چه کنم؟ اگر نمی توانی تسلیم باشی بیدرنگ دست به اقدامی مثبت بزن چیزی بگو و یا کاری بکن که وضعیت تو را دگرگون کند یا خود را از آن وضعیت بیرون بکش مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیر هستی زیبا و درخشان خود را با ذهنیت ها و احساسات منفی آلوده نکن به اندوه اجازه نده تا در تو خانه کند اگر نمی توانی دست به اقدامی مثبت بزنی برای مثال اگر در زندان هستی بنابراین دو گزینه دیگر پیش رو داری مقاومت و یا تسلیم اسارت شرایط بیرونی و یا آزادی درونی از شرایط بیرونی درد و رنج و یا آرامش آیا عدم مقاومت فقط به دنیای درون ما مربوط می شود؟ و یا به دنیای بیرونی ما نیز مربوط است؟ مثلا عدم مقاومت در برابر خشونت. تو فقط باید به جنبه درونی عدم مقاومت توجه کنی. برتری با دنیای درون است. البته عدم مقاومت درونی دنیای بیرون تو را دگرگون خواهد کرد. روابط تو را سامانی مطلوب خواهد بخشید و غیره تسلیم روابط تو را نیز عمیقا تحت تأثیر قرار خواهد داد اگر هرگز نمیتوانی آنچه هست را بپذیری دیگران را نیز آنگونه که هستند نمیتوانی بپذیری قضاوت خواهی کرد انتقاد خواهی کرد برچسب خواهی زد تلاش خواهی کرد تا آدمها را دگرگون کنی. علاوه بر این، اگر به طور مداوم لحظه حال را به وسیلهی برای رسیدن به آینده تبدیل کنی، آنگاه دیگران را نیز وسیلهی خواهیدید که تو را به هدفهایت در آینده می‌رسانند. بدین سان دیگر خود رابطه برایت مهم نیست. آنچه از رابطه به دست میآوری مهم است. پول، قدرت، شهرت، احترام و اعتبار، لذت جسمانی و یا صورتهای دیگر تمایلات نفسانی، بگذار برای تشریح کنم که تسلیم چگونه میتواند بر روابط تو با دیگران اثر بگذارد. وقتی درگیر یک بحث و نزا میشوی، با یار خود و یا یکی از نزدیکان خود، مشاهده کن وقتی که موضع تو مورد حمله قرار میگیرد، چگونه به حالت تدافعی در می آیی. یا وقتی به موضع دیگری حمله میکنی، نیروی خشم خود را احساس کن، وابستگی خود را به باورها و یا خود مشاهده کن. انرژی ذهنی عاطفی نهفته در نیاز به اثبات برحق بودن خود و باطل بودن مخاطب خود را احساس کن. این انرژی ذهن نفسانی است. آنگاه که به وجود این انرژی پی می بری وان را احساس می کنی در واقع این انرژی را از زمیر ناخداگاه خود به زمیر خداگاه خود میآوری، سپس روزی در بحبوهی یک بحث و جدل ناگهان متوجه می شوی که گزینه دیگری نیز پیش روی تو هست تو می توانی دست از واکنش بکشی و ببینی چه پیش می آید بدین سان حالت تسلیم را تجربه می کنی دست کشیدن از واکنش به یا نیز که فقط بگویی بسیار خوب حق با توست آنگاه در باتن به خود بگویی من برتر از این جهالت‌های بچگانه هستم این کار فقط جابجا کردن مقاومت درونی است ذهن نفسانی تو هنوز مشغول کار است و برای خود برتری بر دیگران قائل است من از رها کردن کامل میدان انرژی ذهنی عاطفی درون تو سخن میگویم. همان چیزی که جویای برتری و قدرت است نفس بسیار زیرک است گفتند نفس شگفت هیلگری است گفتم به چنگش خواهم آورد به چنگش آوردم لبخند رضایتی بر لبانم نشست نگریستم نفس از چنگم گریخته و بر لبانم نشسته بود باید بسیار هوشیار باشی باید کاملا حضور داشته باشی باید با خود صادق باشی آنچنان که بتوانی ببینی آیا یکی انگاری خود با موضع ذهنی خود را کنار گذاشتی و رها شده ای یا نه؟ اگر احساس روشنی، سبکبالی، آرامش، رهایی و وضوح میکنی بنابر این تسلیم را تجربه کرده ای، انگاه خوب نگاه کن و ببین وقتی تو دست از مقاومت میکشی و نفسانیت مخاطب خود را تقویت نمیکنی، چه بر سر موزه ذهنی او میآید؟ هنگامی که یکی انگاری خود با موزه ذهنی از بین می رود رابطه حقیقی شکل می گیرد؟ درباره عدم مقاومت در برابر خشونت و ستم و غیره چه میگوید ؟ عدم مقاومت به معنای بیعملی نیست؟ عدم مقاومت به معنای آن است که عمل تو واکنشی نباشد. بلکه برخواسته از سر بسیرت باشد. حکمت رزماوران شرقی میگوید در برابر نیروی رقیب خشک نباش. نرم و انعتاف پذیر باش تا قلبه کنی. در تاویزم به چنین عملی عمل بیعملی میگویند میگویند. در آرامش نشستن و کاری نکردن در چین باستان فضیلتی بزرگ محسوب می شد. این حالت با خنسا بودن فرق دارد خنسا بودن حاصل ترس تنبلی و گیجی است عمل بیعملی متضمن عدم مقاومت درونی به هوشیاری بالاست از طرف دیگر اگر عمل ضروری باشد تو عمل خواهی کرد اما نه عملی که برخواسته از ذهنی شرطی شده است بلکه عمل تو پاسخی است از سر حضور آگاهانه به وضعیت موجود در این حالت ذهن تو از مفاهیم رهاست از جمله مفهوم عدم مقاومت بدین سان چه کسی می تواند عمل تو را پیش بینی کند نفس معتقد است در مقاومت تو نیرویی نهفته است در حالی که مقاومت رشته اتصال تو را با هستی قطع می کند منبع همه نیروها هستی مطلق است مقاومت همان ضعف و ترس است که نقاب قدرت به چهره زده است آنچرا که نفس ضعف مینامد هستی ناب و بیپیرایی و توانمند توست آنچرا نفس قدرت مینامد همان ضعف است بنابراین نفس در حالات گوناگون مقاومت درونی خود را نشان می‌دهد و ریاکارانه میکوشد مثلا ضعف تو را از میان بردارد همان توانمندی حقیقی تو را استحاله بیماری به بیداری اگر کسی به شدت بیمار باشد و وضعیت خود را بپذیرد و تسلیم بیماریش شود، آیا باید از ارادهش برای شکست دادن بیماری نیز دست بکشد تا بهبود یابد؟ تسلیم پذیرش بیچون و چرا آن چیزی است که در لحظه حال هست. من در باره زندگی تو سخن میگویم نه در وضعیت و شرایط زندگی تو. پیش از این؟ در باره تفاوت این دو سخن گفتم. بیماری پاره ای از وضعیت زندگی توست، بنابراین گذشته ای دارد و آینده ای. گذشته و آینده تداومی بیوقفه دارند مگر آنکه نیروی شفابخش حضور تو به واسطه حضور تو در لحظه حال فعال شود. همانطور که میدانی زیر وضعیت های گوناگون زندگی تو، که در زمان واقع شدهاند حقیقتی جرفتر و بنیادیتر وجود دارد زندگی تو، هستی تو را لحظه بیزمان حال همانطور که در لحظه حال مشکلی وجود ندارد بیماری نیز وجود ندارد بر چسبی که کسی به وضعیت زندگی خود میچسباند آن وضعیت را تسبیت میکند به آن اختیار میدهد و از یک اختلال گذرا و موقتی واقعیتی سفت و سخت و پابرجا به نام بیماری میسازد این برچسب نه تنها به این حالت زودگذر عدم تعادل واقعیتی ثابت میبخشد بلکه به آن بعدی تازه نیز می دهد زمان اگر از برچسب زدن دست برداری بیماری به یکی از این فاکتورها تبدیل می شود درد بدنی ضعف بدنی ناراحتی و یا ناتوانی و این است که تسلیم تو را می طلبد. لحظه حال تو تسلیم ایده بیماری نمی شوی به درد اجازه میدهی تا تو را به لحظه حال بکشاند یعنی به ساحت آگاهی شدید از آن برای بیداری و آگاهی استفاده کن تسلیم آنچه هست را دگرگون نمی کند بلکه تو را دگرگون می کند وقتی تو دگرگون شوی، همه جهان تو دگرگون می شود. زیرا جهان تو چیزی جز انعکاس آگاهی تو نیست. در باره این موضوع نیز پیش از این سخن گفته ایم. اگر در آینه نگاه کردی و از آنچه دیدی خوشت نیامد دیوانه ای اگر به تصویری که در آینه میبینی حمله کنی. این دقیقا همان کاری است که تو در حالت عدم پذیرش آنچه هست انجام می دهی. البته اگر به تصویر درون آینه حمله کنی، تصویر نیز به تو حمله خواهد کرد. اما اگر آن تصویر را بپذیری، اگر با آن تصویر دوستانه رفتار کنی، آن تصویر نمیتواند با تو دوستانه رفتار نکند، اینگونه گونه از که میتوانی جهان را تغییر بدهی. بیماری مشکل نیست، مشکل توی. تو خود هجاب بهبودی میشوی، با پذیرش سلطه ذهن نفسانی بر خود وقتی بیمار یا ناتوان هستی احساس نکن که به طریقی شکست خوردی احساس گناه نکن گمان نکن که خداوند تو را مکافات کرده است زندگی را سرزنش نکن که چرا با تو ناعادلانه رفتار کرده است خودت را نیز سرزنش نکن همه اینها حالات گوناگون مقاومتند اگر بیماری عمده ای داری، از آن برای کسب بصیرت استفاده کن. ابتلا مکافات نیست. ابتلا می تواند موهبت تلقی شود. چون نیز هست. از آنچه بد است و در زندگی تو واقع می شود، برای روشنی و بصیرت استفاده کن. با این توجه و ایمان است که سیعات یعنی بدیها به حسنات یعنی خوبیها تبدیل می شوند. زمان را از متن بیماری بیرون بیاور به این بیماری گذشته و آینده نده بگذار این بیماری تو را به بیداری شدید لحظه حال بکشاند آنگاه ببین چه اتفاقی رخ خواهد داد کیمیاگر باش مسها و فلزات بیارزش را به طلا تبدیل کن درد و رنج را به بسیرت و روشنی تبدیل کن بیماری را به بیداری تبدیل کن آیا بیمار هستی و از گفتههای من برآشفته شده ای؟ بنابر این باید بگویم که بیماری پاره‌ای از احساس و تصویر تو از خود شده است و تو داری از این خود از این هویت از این هویت بیمار حمایت میکنی وضعیتی که برچسب بیماری بر خود دارد هیچ ربطی ندارد به آنچه تو واقعا هستی